اخسان. بنامه خدای یگانی خدای یگانی مهربان سلام. روی سرزمین ویتنام میشیم. افسانه ای رو از این سرزمین برای شما من نقل میکنم. کنم. به نام هدیه کلاغ ها، برگرفته از کتاب هدیه کلاغ ها، مجموعه 22 افسانه ویتنامی با ترجمه ای از عبد پاک و تنقرقولی یلقی که اونجوریم از نقل نفسانی ویتنامی شما لذت ببرید در های قدیم در سرزمین ویتنام دهقان فقیری بود که روی های ارباب کار میکرد و هرچه از این راه به دست می آورد یه روزه به باد میداد برای اینکه خیلی ول خرج بود و حتی بدهی زیادی هم بالا آورده بود. روزی از روزها دهقان گاومیش ارباب رو برداشت تا زمین اونو شخ بزنه. اما همین که به سر زمین ارباب رسید، طلبکارها به سر شکتن و گاونیش و خیش ارباب رو برداشتن و با خودشون بردن. دهقان از بس که ناراحت شد روی زمین رو خورده دراز کشید و با خودش گفت: خیلی بد شد، خیلی بد شد. حالا حالا جواب ارباب رو چی بدم؟ بعد از سر اوقاتلخی کارها رو به بد و بیراه گرفت و بر اونها لعنت فرستاد در این موقع دوتا کلاق از اونجا رد می شدن چشمشون به دخان که همچنان روی زمین دراز کشیده بود افتاد اونا فکر کردن که جسدی روی زمین افتاده بنابراین کلاقا به طرفش پرواز کردند تا به اون نوک بزنن و بعد هم اونو بخورن کلاقا آروم آروم به دهقان نزدیک شدن و روی شونه های اون نشستن اما قبل از اینکه فرصت نک زدن پیدا کنند دهخان فوراً یکی از ها رو گرفت و گفت آها بخو گرفتمت من که هنوز نمردم که شما منو بخورین ها بعد کلاه رو توی مشتش فشار داد و گفت الان نشونت میدم که مرده چه شکلیه کلاه که دید بعد جوری گرفتار شده به زبون اومد و گفت ای مرد اگه منو آزاد کنی هدیه به تو میدم که تمام آرزوهای تو رو برآورده کنه. دهقان بی اجتناب حرف های کلاغ اونو بیشتر توی مشتش فشار داد. کلاغ دوباره گفت: فشارم نده، دارم میمیرم. فشارم نده. تو هیچ آرزویی نداری که بخوای برآورده بشه ها؟ من من هدیه خوبی برات دارم. فشارم نده. دهقان دهذی از فشار دادن کلاغ باز موند و گفت: خوب، خب اگه راست میگی رو نشون بده تا قدرت اون رو آزمایش کنم کلاغ دهنش رو باز کرد و سنگ کوچیکی از اون در آورد و به دست دهخوند داد و گفت بگی اینم سنگ جادویی داشتم میمردم این سنگ میتونه تمام آرزوهای تو رو برآورده کنه حالا حالا منو آزاد کن منو آزاد کن دهقان خنده‌ای کرد و گفت <تصفيق> عجب عجب که تو را آزاد کنم و بعد ادامه داد و گفت نه <تصفيق> نه نه نه اول یه آرزو کنم اگه این سنگ چنین قدرتی داشته باشه باید آرزوی منو برآورده کنه وگرنه تراخ کلام مرد دهقان رو قطع کرد و بتوندی گفت <تصفيق> زود باش زود باش زودتر آرزوت رو بگو و با چشم خودت قدرت جادوگین سنگ رو ببین زود باش دهخان که نگران گاومیش و خیش ارباب بود برای امتحان آرزو کرد که فوراً گاومیش و خیش ارباب رو به دست بیاره در یه چشم زدن گاومیش و خیش ارباب در مقابل چشمان مرد دهخان حاضر شد مرد با خوشحالی چلاق رو آزاد کرد و یه راست به سراغ اربابش رفت تا گاونیش و خیش رو به اون پس بگیم مرد دهخان بعد از اینکه که گاومیش و خیش رو به ارباب داد با احترام به ارباب گفت ارباب جان من دیگه توان کار کردن روی زمین شما رو ندارم اگه اگه اجازه بدید از فردا پی سرنویشت خودم برم و باقی عمرم رو با آرامش زندگی کنم ارباب نگاهی به مرد دهقان انداخت و گفت چه قصد داری از اینجا بری ها؟ بعد هم سری تکون داد و اجازه داد که مرد دهقان پی سر بشش بره دهقان با خوشحالی از ارباب خداحافظی کرد و به خونه خودش رفت دهقان توی کلبه کچیش چرخی زده گفت نه نه نه نه نه این کلبه دیگه به درد من نمیخوره بعد سنگ جادویی رو مقابلش گذاشت و گفت ای سنگ جادویی من قصری میخوام که نخشای در دیوارش اجده و باشه قصری زیبا و بزرگ که تا به حال کسی نزیرش رو ندیده باشه دهقان هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که در مقابل خودش قصری بسیار زیبا و بزرگ دید قصری که حتی توی افسانه ها هم نظیرش وجود نداشت. دهخوان با خوشحالی وارد قصد شد و زیبایی و بزرگی و شکوه اون حیرت کرد. دخوان هیجان زده سنگ جادویی رو گذاشت مقابلش و گفت. آه ای سنگ جادویی مزرع ای برای من آماده کن که وقتی از این طرفش نگاه میکنم، اون طرفش دیده نشه و پرنده ها بزرگ در یه پرواز نتونن به آخرش برسن هنوز حرف دهقان تموم نشده بود که شالیزار وسیع و بزرگی در مقابلش ظاهر شد درست همونطوری که آرزو کرده بود دهقان دیگه از خوشحالی نمیدونه چیکار چی کار رو توی شالیزار می‌چرخید و از دیدن اون همه سرسبزی لذت مرد دهقان که حالا حسابی ثروتمند شده بود به فکر افتاد که این همه ثروت اونم بدون زن بچه به دردش نمیخوره اون که احساس تنهایی میکرد به خواستگاری یه دختری که در همسایگی اون بود رفت و زندگی خوبی رو با زنش شروع کرد زن دهقان انگش به دهنده بود که شوهرش این همه ثروت رو از کجا آورده و بالاخره هم کنجکاویش گل کرد و با خودش گفت نه نه باید ره توی این قضیه رو در بیارم بعد هم تصمیم گرفت تا جایی که میتونه به شوهرش محبت و مهربونی کنه زن روی حرف شوهرش حرفی نمیزد و اونقدر به اون مهربونی و محبت کرد که دهان هیچ رازی رو از اون پنهون نکرد و همه چیز رو به زنش گفت الا راز چگونگی ثروتمند شدنش رو روزی از روزها زن غذای خوشمزه که شوهرش اونو خیلی دوست داشت پخت و جلوی اون گذاشت و بعد با چرزبونی گفت شوهر عزیزم آرزوی پدرم مونده که نمیتونم اونو به زبون بیارم میترسم اونو برام برآورده نکنی مرد ده خان همونطور که غذای خوشمزه رو میخورد گفت زن چقدر این غذا خوشمزه. فقط کافیه که لب ترک کنی تا هر آرزویی داری برات برآورده کنم زن از فرصت استفاده کرده گفت من آرزوی بزرگ ندارم فقط فقط و بعد سکوت کرد مرد با لحن مهربونی گفت فقط چی؟ بگو اگه اگه ست تا هم آرزو داشته باشی برابط برآورده میکنم چقدر این غذا خوشمزده است زن گفت من من من فقط میخوام بدونم شوهر عزیزم که تو باشی این همه ثروت رو از کجا بردی همین مرد دیخان که سرش گرم خوردن غذا بود کرد کرده گفت ای بابا این که چیزی نیست بعد تمام ماجرا رو از اول تا آخر برای زنش تعریف کرد حتی جای سنگ جادویی رو هم به زنش نشون دهخان بعد از اینکه شکمش سیر شد برای سرکشی به مزرش رفت همین که مرد دهخان رفت زن فوری سنگ جادویی رو برداشت و به خونه پدرش برد تا پدرش هم به ثروت زیادی دست پیدا کنه وقتی دهخان به خونش برگشت و دید از زنش خبری نیست هرچی اونو صدا زد خبری از زن نشد که نشد مرد آخر سر رفت سراغ سنگ جادویی تا از اون بخواد زنش رو پیدا کنه ولی دید ای داد و بیداد از سنگ جادوییم خبری نیست مرد دهقان فهمید که کار کار زنشه بنابراین حیران و سرگردون رو به بیابون گذاشت و همونطوری که میرفت زار زار گریه کرد مرد دهقان همونطوری که میرفت به پیرمردی رسید پیرمرد از دهغان پرسید ای مرد چرا اینقدر حیرون و سرگردونی چرا گریه و می میکنی مرد دهقان تمام ماجرا رو برای پیرمرد تعریف کرد. پیرمرد دلش به حال زار مرد دهقان سوخت و گفت: دگران نباش. من میتونم بهت کمک کنم که دوباره سنگ جادویی رو صاحب بشی." مرد دهقان با خوشحالی در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت: "چجوری؟ چجوری؟" پیرمرد گفت: تو باید به عرفای من خوب گوش بدی و به اون عمل کنی مرد دیفان به تندی گفت هرچی شما بگید، هرچی شما بگید پیرمرد دو شاخه پرشکوفه به دست دیخان داد یه شاخه شکوفه های سفید رنگ و یه شاخه شکوفه های رنگ. بعد به پیرمرد گفت اول به باغ پدرزنت برو شاخه شکوفه‌های سفید رنگ رو اونجا بکار دهوان پرسید بعد چی بعد باید چیکار کنم پیرمرد گفت بعد برای اونا یعنی پدرزنت اینا اتفاقی میفته که مجبور میشن دوباره به سراغ تو بیان و وقتی اومدن از اونا بخواه که شکوفه‌های قرمز رنگ رو بو کنن. تهران پرسید بعد چی بعد پیمان گفت و تمام ماجرا تمام شد مرد دهان که خیلی تحجیب کرده بود شاخه های پرشکوفه رو از پیرمرد گرفت و به باغ پدرزنش رفت و دور از چشمونا شاخه شکوفه های سفید رنگ رو اونجا کاشت. بعد به خونه خودش برگشت. شکوفه های سفید رنگ فورا رشد کردند و به گلهای زیبایی تبدیل شدند و فضای باغ از بوگ خوش و معتر گلهای سفید پر شد. پدر پدرزن، مادرزن و زن دخوان همه فورا به باغ رفتن و گلهای سفید رو چیدن و اونا رو بوییدن اما همین که اونا گلهای سفید رو بوییدن احساس کردند که صورتشون داره هی سنگین میشه هنوز لحظه نگذشته بود که بینی اونا مثل خرطوم فیل بزرگ و بدقواره شد اونا واج موندن و از غصه و ناراحتی شروع کردن به گریه و زاری اونا فکر میکردن به یه بیماری واگیرداری دچار شدن هرچه پیش طبیب و حکیم میرفتن و دواو و درمون میکردن بینیاشون خوب نمیشد که کمیانشون چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه پدرزن مادرزن و زن دهقان به نزد مرد دهخان اومدن مرد دهخان وقتی چشمش به بینی خرتومی اونا افتاد خندش گرفته و هر سعی کرد که جلوی خندش رو بگیره نشد که نشد و شروع کرد به خندیدن حالا نخند کی بخند پدر زن مادر زن و زن دهخان به پای مرد دهخان افتادن و از اون خواهش رو التماس کردند که اگه میتونه بینی اونا رو به روز اولش در بیاره و خوب کنه. مرد دهخان رو به زنش کرد و گفت: <تصفيق> اول اون سنگ جادویی رو به من بده و به سر زندگیت برگرد تا من شماها رو معالجه کنم. زن بتوندی سنگ جادویی رو به شوهرش داد. دهقان هم شاخه ی شکوفه های قرمز رنگ رو به اونها داد تا بوکنن. پدرزن، مادرزن و زن دهقان هم با اجل شروع کردن به بوییدن شکوفه های قرمز رنگ. به در یک چشم هم زدن بینی اونها به حالت اول برگشت. از فردای اون روز دهقان به همراه زنش در قصرش زندگی آرومی رو آغاز کرد و صاحب یه دختر و یه پسر شد. زیبایی دختر و پسرشون زبان زد خاص و عام شد اواخر عمر دهخان فرا رسیده بود که یه روز مرد دهخان توی ایوون قصرش نشسته بود و دشت سرسبز رو تماشا میکرد. در همین موقع دوتا کلاق پرواز کنن به پیش مرد دهخان اومدن و توی ایوون کنارش نشستن و گفتن ای دهخان دیگه وقت اون رسیده که سنگ جادویی رو پس بدید. هنوز حرف کلاغ ها تموم نشده بود که سنگ جادویی پرید و توی نوک یکی از کلاغ ها جا گرفت و کلاغ ها پرواز کنان از اونجا دور شد. افسانه هدیه کلاغ ها رو از سرزمین ویتنام براتون نقل کردم این افسانه برگرفته از کتاب هدیه هدیه ها با ترجمه از عبدالسلام پاک و تنقرقلی یلقی بود افسانه ها از مردمی ترین هنرها به شمار می که در اونها مسائل باورها نبرش و رویداد در قالبی جذاب ساده و سرگرم کننده بیان میشن و این از دلایل مهم فراگیر شدن laughs on us. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالکپور میراثدار بهار گیویان اجرا مهران دوستی سید اکبر نیکایی تایید کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر